اللهم لا شيطان بسم الله الرحمن على لله رب الله عليه رسول الله الطاهرين المعصومين ارحمنا رش متعرض یک مصطاق نسبتاً مصطاً واضح غشی ها در در مزمان شدیم از این مصطاق واضح نظر ما به احلاق بی زیادی از فوقهای اسلام رو مصطاق حیل گرفتن اون حدیث تسریه تسریه توله ابل و یا جمع کردن شیر در حیوان که حیوان مثلا به نظر پرشیره نه سالم پرشیره روایات اهل سنت و متعرس شدیم و متون مختلف معروی شد خیلی این مسئله پیچیده بوده و خصیصا چون ابو هنیکه و از این آن کوفه یک حرفایی جمیدادن ظاهرت با محدثین در مقابل اینها سعی کردن اون رو زیاد نرقه بکنن و خیلی به اصطلافش بها بدن راجع به حدیث تسریه تسریه صلقه چه در شاهد، چه در ابریاهات تا بقردی در رواید نامده هست شد که در مسادر آمله را متعرض شدیم از قدیم را متعرض شدن و که تو اون روایاتی که من دیدم آنچه کامل نایدیم شن نزول تصویه هم نحل نشده به در شد مثلا که ماستان از وقتی میشد خورمایی بود تکشنگ بود جبریر کاملن دستان زیر خورما زیر شراب بود این قرش رو نه او تلال که هم من اشنافه لحظه نماند اما راجب تشریه رو در کجا رو به چمانسته در فیرانبه فرمیدن این و الان من یادم نمیاد جایی دوشم در مسادر اهل سنت. و رجیب مسادر شیعه رجیب مسادر حدیثی اول صحبت میشه که زیر بنای فکراتشی هست بعدم مسادر پرکی هم به اندازه مناسب و بحث خودمون و ببینیم آخرات الامرش از قش یا تدلیف ما خیار ایب رو ثابت میکنیم که سلاسی باشه یا خیار تدليس رو خیار سنائی به سلاس ثابتش میکنیم از شد تونجهی که ما الان روایت داریم در مجموعه مایو سمابشی احلا اسناحشه و ریره قدیمترینشون در کتاب دعائم ان رسول الله آمده که از حدیث و فقه اسماعیلی هاست شیشمونی و بوله ایرانی ها مال اسماعیلی هاست اونجا هم ان رسول الله نقل کرده و تعاویرش هم به تعاویر اهل سنت می کنه ظاهرم از اهل سنت یرفته و در اونجا داره فهیه خلابه مختلف منه تدیزه منه فریبه یعنی گول زلم ام. ظاهرش هم این است که در اونجا خیار ای نگرفته خیار تنگیز گرفته و خیار رو هم سنایی که تصدیح این مصدر اولی که در مجموعه شیعه ما وجود دارد مصدر دوم ما کتاب ماند اخبار سلوغه خبتی این شیعه از حدیثش از رسول الله کرده و کتاب عبارت کتاب قریب الحدیث ابو عبید قاسم بن سلام رو ورده و دیروز عبارت خاصم رو کامل خوندیم کتاب غلیب و رو معلوم شد مرمون صدو و خیلی عبارتیشون رو کرده و معلوم شد که بعضی از نسخ کتاب در خیاریشون بوده نسخی که ما الان در اختیار ما هست اکشم یعنی در این که در ازیادش با کتاب فرمونید پس این هم برگشت به مسادر آمنه و روایات از رویات از طریق اونهاست از طریق ما نیامده. ثبت مصدری که ما داریم یعنی تو باز مسادر ما نه روایات ما به تبدیل ایشان نمیشه ابن ابنو شیف از کردیم این عمالی مال خود شیخ توسیار هست باید به پسر ایشان چون مرمو شیف بعد از اینکه که نجف مشرف میشن یعنی میرن کنار افرانیو رو مومنی چون کوفه شهر بود این خود در کلومتی کوفه فقط عقر مبارک بود برای ایام زیارت ادهی از ا دستی ها از که به اسطلاح میان بساط میکنن کنار یا با گاری میاردن یا چیزی میوهی چیزی در حد اینجوری بود توسط شیخ خیمه ای میگذن حالا من جایدن خیمه هست دوزه هم دیست مصدر منزلشون همونجا میستدن که اون منزل برزن من شده مصدر شد شیخ توسی آین که نجاکم شرب شده. مصدر دوریه که حرم و مامونی و مامونی رحله یعنی شرو به شمال الربی مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره شیخ در اونجا چه پنج سال بعد از آمانتشون به نجا شروع میکنن ایدی از مالی هایی رو که از وقت اول از زمان طلبگی در بردار داشتند میخوندن مینوشتن گفتن میگن اماریه شیخ میگن ابن شیخ یعنی پسر ایشون نوشته بوده 40 شده که راهن اخبران شیخ مفید ابو علی مراز اصطلاحا مفید ثانی باشیم پسر شیخ توسی است برن نبوده جو ای پدر بوده شخصا که ایمون نبوده خب شخص شخص غیر عادی داشته و پسر اونقدر بروزو بوده که در مکی قل حسن ابن محمد مرغوم پسر ایشان حسن ابن محمد خود شیخ توسی محمد ابن حسن منون شو پسرش بیسم پدرش باشید حد توسی قال اخبران شیخ و سعید والد ابو جعفر محمد بوده. شیخ محم قال اخبرنا محمداد محمد مراج شیخ مفیده محمداد محمداد محمداد نعمان شیخ مفید محروف شیخ مفید فسطر شیخ تلسی رو هم مفید, مفید میگه مفید تقریبا به عنوان مثلا قصداد نمونه الان مثلا توی غوضایی ما پروفیسالین در این صاحب نظر قال اخبرنا مرحوم شیخ مفید از علمای بردار نعمم میکنه از ابن جعاوی اخبرنا اقوبت محمد ابن عمر علی جعابی اسم کاملیشون ایش دوزگم داره عمر و احمد و فلان خیلی طولانیه به این مختصری نیست ایشون معروف از به ابن جعابی در بغداد بوده و جزوه و های روزگار انصافت ما در دنیای اسلام چند نفری داریم که اینطور به دهاز حفظ و که بر در احادیث و روایات اینها خب علا از ایشون شده که 400 هزار حدیث رو من حفظ دارم. من متنه و با 600 هزار حدیث می‌تونم مذاکره و بحث کنم. خیلی قبول است ابن جاوی انصافا هایی داره شرح کرده به, به خیال از خیالات اشاعه خیلی قبول است. به نظر من علوقت نشد نگاه کنم. به نظرم در بعضی از کجا به اهل سنت با با تمامی معلومات خان رحیم الدین خیلی دین‌جو دینی ما درست به نظر من حالا تو هم نیست عزیبی. اخبار ما ابن جاوید که هستم از بزرگان را تا عجیب ناشتن حدیث شناس و نقاد و رجال و تاریخ و اینا احوال رواط و خیلی پرد فوق العاده ای درش من اصولاً در دنیاستان یک چند نفری داری داریم دیگه داری حدمث ابن عقده و همین ابن جاوید که واقعا داره حافظه های فوق العاده عجیبی هستند قال حدثنا فضل بن حباب جمی حدثنا فلان ابو خالد اسدی الان این دو نفر الان تو ذهن تو حالشون نیست و نگاه بکن فعلا نمیذاره ابو بکر بن عیاش معروفه از ده سال اون وقت عیاش و این سعد الان در کده بحثه سنت هست همین سند همین صالحه بن سعید حنفی این رو میگه اون سندات اون حکمیه این سند هست این صالحه بن سعید حنفی ان جمعه ابن امیه این سند رو من دیدم هم عبدالله رو آمد ما باشه خوندیم تو کتاب محلا همه الان مسترش تو ذهن نیست این هست این سنه و که این روالیه باز هم شد بعد سند بعد شیخ مفید تماما سنی هم از این حبیث فقط تو مسادر ما آمده به این معنا که در امالی شیخ توسی آمده از کنم امالی شیخ توسی کتاب عربشی نیست وقتی آدم نگاه می‌کنه اماری رو ظاهرا مجموعه حجزا، ماریوزیشی باشه یا مجموعه کتابوغی بوده یا مثلا کار کراسایی بوده که توش مثلا 40 تا 50 تا 80 تا 200 حدیث بوده ایشون چه قدراشون رو بندان نشستم با قول ما اوندا دیگه‌را نوشتم ارزش چیزی نداره بر هر حال این سرو همین مصدری که از مصادر ماست یعنی از مصادر شیعه است حدیث رو برده لکه دوتا رابیش رو از چیه هم و توسی و مربون مفید برگرد بحل سنت و آخرش هم به عبدالله ابن اومد اما این رو من با این مطن اینجوری که الان ابن اولیو آوی رو هم می الان ندیدن نشده مراضیه بکنم نه اینکه نفت می کنم احتمالا سنیان بشته باشن برهاب کتاب ها محلوب بشن اینجا قصه شو این عقبه، اگر این قصه درست باشه این حکم در سال هشتم هجریه چون مورد از عقب در اینجا که پیغمان رفتن همون سال هجت فلویزه ببخشیم سال هجت سال ده فقال لای و جابز ها احدون هزار سامنه کسی از عقبه رد نشه عقب به اصطلاح ومه دردست الان دیگه خیابان شده نداریم خیابان چی اسمش؟ خیابان سقیه وی این عقبه که به اصطلاح جمعه سالسه روی همین تبته بود رضا پشت جمعه سالسه رم شد رم از دو سفره شد بعدها این تبته رو شکافن که الان از خود افیابانه به اصطلاح عدیبیه مستقیم میره داخل منا میشه از خود همین عقبه از آسه و عقبه رو شکافتن وارد منا میشه فهم پیغمبتون دارو اجابه زهال اهلون فهم لجل حکم ابن آس پدر عرب امر ابن حکم بله حکم ببخشید پدر مروان ابن پدر مروان حکم حکم آس مثلا سعی که درمشه کشی که مثلا بقوله هایش تقلید رسول الله احانت مخصولا بر رسول الله اینجور احانت رقال رسول الله منشتر آشاتم مسرات و او فرقیان این تعبیر این نفری سلاس ایام ندنه حکم هم فا هم وجده حکم و فمه اونم شروع کردن, کردن و که که مورد صحبت کردن تقریم درسال رسول الله سبه سور به نبی فداره پیغمان که داره اون تحانف میکنه نفریش کردن فسور شهره دو ماه افتاده بود به اصطباق قشن سر،, سر مرز قشن یه دون مرز مرزی است اصطباق قشن فسوره شهره سمعفاق اگه این قصه باشه این خکر رو در سال آخر که تو بدا تنمیده باشه سمعفاق فا نبی از مدینه اون از مدینه بیرون کرد و نفاه و انها حبتی در مروان م خریسی بود مروان و مربان و پدر شم هر دو فعلبر از مدینه بیرون کردند مروان را نه و حکم بود و حتی بعدها صحبت کردم با اووق اوور هم اجازه ورود نداند بود پیرا بر بیرون کرده. با, با اومه صحبت کردم اون اجازه ورود ندا تا عثمان عثمان مروان و اجازه ورود داد و حرکم مورد بود مروان پستر هستیم. مروان رو اجازه ورود داد و همین شخصی که، اغنبر بیرون کرده بود شد پدرش اول بود خودشم پسرم با پدر این بعد شد خلیفه بعد جریان ما آقیه پسر یزی ما دوم به اصطلاح که خودش خر بود بود من چیز ندارم خلافت ندارم مروان خلیفه شد که بعدش هم نمروان بعدشم مروانی ها مروانی ها اصطلاحا به ایشون برده بشون پسر همه های از خاندان خود بنیمومهی هستن یک تریر از خب این برایت مبارکه در مسادر ما هست اما دقیقا از مسادر اهل سنت گرفته شده این هم به درد کار ما نفعه اون راهی رو که ما گفتیم به علمه منتهی بشه این هم منتهی به علمه نشده تا نجه بشه ولی <تصفح> یک و دو یک و دو سه و سه تا حالا که متاسفانه هیچ کدی باز به علمه نهست به لحاظ دیگه ما نداریم یعنی این مسئله حدیثی رو در این کتب نداریم از در بحث فقیش عرض میکنم این مسئله تصویر رو ما قبل شیخ داریم من همیشه عرض کلمه میگوید احادیس احسانت برای اولین بار توسط شیخ توسی در حوزه های شیعه اما این فتوای فقیش قبل شیخ توسی به لحاظ حدیثی یعنی در مجموعه های حدیثی در این کتابی که اسمش است در این کتاب اسم اوالی چاپ کرده در کتاب اواللالی که در قرن ده نوشته شده اونجا هم آمده از کلیم اسم کتاب اوالیه نسخه خط معلف مرمان موجوده زبخش عوالی شده و علما عوالی که علما گفتن اوالی که معنا نداره، قاری کردن اوالیه چونان لولو یا مورواری این که نمیگنه آلیه نمیگنه آلیه گرام گرام بها نردش من شد قوال عالی، آلی قوالی رو تسریع قیاسیه بهتا خود مربون عوالی اوالی درشت. اینجا هم به اسم عوالی شاب کرده درستش هم همین در کتاب اوال الله سه بار این حدیث و عبوده. اینجا که نوشته اینجا که نوشته اینکه نوشته, نوشته سفیه تنجوه این صفحه که از اوالی داده همه جلد یک اوالی چون اوالی چاپ نشده بود یه مخدوط بود تا اثیران چاپ شد و همچاپ شد تحریقا زحمت کشینه چاپ کرده در چهار جلد چون این آقایی که این کتابی کردم جلدون هست شماره جلد نرده این شماره صفحه شما جلد اوله یکی صفحه پنجه و هفته که خیلی به واژه قال قومه روی فلمصرات انه من اشتراب نه روی انه چون قبلش اشا رویه انه روی بود اینجا در روی فلمصرات انه من منشتر و مصراتا ثواب خیار ثلاثه داید ان شائعه رد ها برد معها ها من اطعام این شائا من این در میان مصادر اهل سنت هم بود طعام بود انا من هم بود یک کاسه یک مثلا از تمام که گم باشه این یک جا در کتاب اوالی رو بنده. کتاب اوالی رو تقسیم بندی کرده یکی شویستا مقدمه شه و سه قسمتی یا شعار بسمتی من مهاجی نوری خب این کتاب در اختیار سال وسائل بوده سال وسائل هم به کتاب اعتماد نکرده اونو خیلی زعیف نمیشه نقل نکرده از کتاب اوالی نقل نکرده و طبعا خود کتاب عوالی بعد از اینکه که پخش میشه محل خراب میشه به ها داره به ها سعی کرده از عوالی استخداش بود همه محوم صاحب و قبول نکرده این اخصارت وجود داشته تا محوم حاجی نوری که مفصل راجع به این کتاب صحبت کرده و قبول میکنه شواهر را به کتاب و قبول میکنه حاجی نوری با تمام اسرار زیادش مقدمه را قبول داره که خیلی غلط قلوته مثالی غلط مقادمه بخش اول یعنی یا مقدمه ما رو قبول نمی‌کنه این احادیث اینجا همه تو بخش اول ما همون قسمتی که خود الی نوری به نداره این اونجاست در اونجا آورده این احادیث و کتابات بخش دیگه چرا مثلا یه از ادله دایی و از کتاب یونانی فهم اینها من احادیث استخراج کردم اونها رو مثلا حدیث نوری بهتر می‌دونم تا بخش اول رو که خیلی به اصطلاح غلط تولید حالا یه حالا این بحشه اول هم فصول داره فصل اول دوم سبا همی فصول صحبت کرده این که اینجا عبرده فصل رابع در فصل رابع این شمایه جرام بودن رویه خیلی مسرات این در فصل رابعه که میگه من این را از همون کتب نهارتم فعلا انالنبی روایاتی که فرح از چه همه در اونجا ورده. حالا از کجا گرفته؟ ایشون در فصل اول در فصل اول طرق خودش رو عورده هفتا طریق ایشان مرموم ساحبه اوالی از زمان خودش تا زمان شیخ توسی هفتا طریق عورده از زمان شیخ توسی که رسیده دو طریق هم به امام ساده و انعبیه باقی و انعبیه سجاد و انرسول الله انجیر غیر انالله انقلم ان ان... به دو طریق هم روایات رو رسنده به اون که و بعد درد به این طرقی که ذهب شد بیگه به همین طرقی که ذهب کردیم از فریق همبر اینه اونجا آورده این قسمت صفحه پنجه هست دوبار هم در صفحه دیویست و نونزده سر آورده این تو فصل نهمه تو فصل نهمه شناشه یکی این روایاتیست که در بعضی از اون کتب، اینه همه اون که باقی با کلش نمکه نیست و به بعضی از همیشه بعضی بعضی همه این چیزیه اجازه دادنه خب اگه نمیگفتن او خبرو جزء انصر مصلحه خب باید مفید و صالحه باشه درحالی ان اینکه نقد میکنه از یک کتابی رو هست که تقریبا به وجهی تقریبا خودش از چه بگی چه نگی فرقی نداره بعضی از اون مصادر این فصل تاسعه و بعضی از تو به بعضی از تو والله صل الله علیه و سلام من شیش تا شاتن مصراو فواب اختیار خلاص تعیین ان شاء و این شای رده ها و ساعمل تر یه خوندید تو روز عبیس بود و از کردیم تو بعضیشون اول و شاته تو بعضیشون شاته تنهاست و نیست و سراسته ایام چون نیست بعضیش هست بعضیش نیست ساعمل تر و خیلی مختلفون فیه باز در هم سخیه دیریس و نونزده گفته بقال علیه السلام من تا افرمی خرید محفلتن محفلن همونه مثل مثل رواب الفیال ثلاثت ایان فه ها رد مأه ها لبنه ها او مثل لبنه ها قمه هم هم در رواد حتی این متن خیلی متن حجیبیه رد مأه ها, ها او مثل لبنه ها هم این رو الان درست درمید که اثنان معتررشون این مدنه و رد لبنه ها این هم حس این روایت با سه مرد در کتاب عوال الله علی آمده همه هم به پیغمبر اکن اثبت داده با با همون سندی که در اول کتاب رو برده فقط در این دوتا نوشته که در بعد از اون کتب هست و با بعد از طرق من که رفونم دیم فهم به این مرحوم ابن عوی جنهور ما چند بار صحبت کردیم از عجایه به اینه که ایشون فنام چند تا از نسخ موجوده به خط خود ایشان اجازات اون که اصلا اسم جده ایشان هم تو بعض جمهور آمده بعض عبی جمهور آمده فرن عبی جمهوری، جمهور یا جمهور مشکل فرح کنند جمهوره اما در بعض از اجازاتی که به خط خود ایشان هست فرن جمهور آمد این که به اسم ایشان که نمی که واقعا ایشان مثلا چی جوری بوده و از خجا بوده و خصوص خیلی از این ایت شباید آبای ملازه کرده باشه های مرکشی هم رحمت که مقدمه اون مفصلی رنگ شاب به کتاب نمیشون به خیلیشون تحضیلی رو تند توسی از کلمشون هفتا طریق دارن به کتب اصحاب و روات اصحاب تا به شیخ میرسن هفتا طریق حالا اون هفتا طریق هم چه از مصیبت دار جوی خودش از شیخ توسی هم تا امام ساده دو تا طریق داره هر دو طریقشم هست به ا سهی تر تصیحش رو کنم نه قابل قبول نه اون تصیحش یعنی کاملا باطله نه این طرح مثلا مختصر باطل باشه باطل <تصفح> صرفه هر دو طریقی که ایشون اوزه باطل صرفه اصلا دو از شیخ توصی. نه،, نه در کلمات شیخ توسی این طریقه هست نه در کتب دیگر ما هست نه اصلا درسته فی نفسه یک بلیه وحشتناکی واقعا احتمال میدین که واسه ایشون شده سان پیدا کرده بذاره توی شی چیزین که شده علاف نه این احتمال میدید در حد احتمال میدید چون اقل این کار نبوده. خیلی وضعش خرابه این وضع این دو طریقی که ایشون لولا خوف اخلاقی خونده و چه از اون فرضش اینطوریه که راهو الی نمی‌شه که خودش باطل محض بعد میگه به این طریق من تمام روایات رو عمیون بن کتب علما و حکما توی جمعی علوم و فنون و خنگونه کنه نظرم می خواهد به می خواهد بیش هم خدار کنه مثل برگرسن که هر که می زن معامی کلماتشون نمیتونه چی داره میگرسن یعنی هر که می زنه که اصلا نمیتونه چی داره میگرسن اصلا نمیتونه آخه فرسون که حالا تو دادن دا تنین دا باطن که تو راهشیه باطنه اصل با آثار شه ین سینا جمعیه کوه و حکما ها <تصفيق> چه وقتیی به کوته حکوا داره. خا این کندندار دیره دیگه و همین طریه به جمعی کتب علمما و بر حکمه ها. مرد به صی من فکر می کنمم تو حال ایشان ا معانی کل ما س نمیفهمیده چیزی میریه؟ اما شککتایی سی ها ن اسم که دو مااصل اصلا با آ ما مدر می کلاب به شکارزه سود ساله کتاب نجا چه ربسی به این حرف را داره وقت میگه فیزیمیه و علوم و کنون حالا چه که خنده به فیزیمیه و علوم این مطمئن که بامر و فیزیا و کیمیا و الاخر نجوم و مثلا فلسفه و الاهیان ظاهرن فکر میکنن من فکر میکنن ظاهرن این محوم قدس الله ها نسته خیلی معانی کلمات و اصلا ملتفه نمیشه چیزایی میهی هیسه الاهیان ظاهرن فکر م اون که در کتاب عوالی فعلا وارد شده اینجوری خود اخباری ها می روشتن مثال زرف نیست زرف یکی اصطلاحه این یک چیز مصیبته، یعنی بحث زرف نیست یکی مسیبتیست از مسائل که از زمان شیخ توسی من تحکیم شیخ توسی فهلس داره شیخ توسی مشیخ داره که بایده که از اون تریقه های مشیخی های فهلسی شونده شونده شونده می روشتی یه چیه هر دو طریقش من درابردی که در اینجایی نیست حالا کنده اینه هر دو طریقش نیستیم نوشته هم باطله فی نفسه هر که نوشه شیخ صدوق از نرحوم کلینی اصلا شیخ صدوق از کلین هم فی نفسه باطله هم در یک جا نیست هم اسما غلطه طریق اولش نشونه انردی جربن و شیخ صدوق از نرحومه بری جربن مثلا شیخ مثلا شیخ مصیب شیخ طوسی، شیخ طوسی، شیخ مصیب، جعفر بن قولبه. ما اصلا ابو جعفر بن قولبه، نه عبد القاسم جعفر بن قولبه. شده؟ هم اسمار طرف و اولوت اند. تصاوبر <تصفيق> می‌فهمید؟ عبد القاسم جعفر بن محمد بن قولبه، کنده ابو جعفر بن قولبه. مثلا جعفر جعباره... شده؟ رضوان هست. این نسخه چاپ شده، خط خود مولده. اشتباه نشه. ما اوالی به خط مولد در کتابخانه اردوزا موجود هستند، ذکر اونا سر غیبت رئیس‌المشاور شده به خط خود بخوام بگم خیلی یعنی بحث تجزیهات به یعنی بحث میگم عبد القاسم جعفر النقوله به کله علی ان شیخ کلینی ان محمد ابن محمد ابن محبوب کی در هیچ حتاب موز نسخه موجود وجود ندارم شیخ اسم نه کلینی این محمد ابن علیم محبوبه کلینی هم عزیفی نهاره نمی اصلا استاد کلینی یا خیلی یک فضیحت وحشتناسی یک چیزه به یک حدی که اصلا قابل تصور نیست قابل تحقل نیست توسط توسی شیفتوسی ورده و باز بدبختیش اینه که گفته به همین طریق جمعیه کتب و حکما و جمعیه علوم و خدودا و تو و گفته تاریخ حالا من نمیفهمم خدا خدا اندکشون اشاره به واقعیت ساده و اندکی از و رسول الله حکما حکم آشکاری اون چه دوستیم؟ حالا که کتاب بس بحث... کیز نداره بس زدک کتاب نداره مثلاً حالا یه حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا اصلا که بله یک حدیث واحد داریم که از طریق شیعه است احتمالاً شاید اون حدیث رفتی به تسریه داشته باشه اون حدیث اول باب پنج از زمین ابلاب سیاره جامال احادی سفی کتاب کافی ادتون من اصخاب نام انا احمدرم محمد که ظاهرم مراد اشعری باشه هم منذکه رفت آن از المغراب که می‌دونم سرس نه سرگس، آن ابی ابن, ابن عمر، حماد، این در اینجا اولی هم الله. الله ابی علیه السلام، فی رجلن، تو این دو باید باید شاد آمده ما در بحث کم اشاره کردیم اینشالا خواهیم قول در فخه چیم بیشتر شاد نبرهه اما در فرحه سنده ابل و شادهه شاده, شاده تمام هست و غرم هست فهم سکه ها ایام هیچی کوش از اشعار داره سه روز نگه داره سنبه ها نداره مسرات بوده چی بوده سه روز نگه داره کرد قاله علیه السلام امکان فیتر که سلاسه علیه ایام یشغب و ها رد وعه ها سلاسه ایام از کن سال سه چاره سه که ترزم دو کلو دو کلو مثل سن دیویستگاه تقریبا ستا و انلم یکن لها لبنان علیه هیچی کهش نداره مسررات محفله نداره از این که داره که رد معه ها سلاثات هم داد خونه و دردیه روایات احل سنت تو مسرراته شاید این حدید اونیش ما از روشن شد رو دارستم پس بنابراین ما راجع به حدیث مسررات در مسادر مایوسن ما به شیعه چهار تو که آخرش حوال لالی بود به شرحال روشن شد اما در روایات شیعه هم یک دانه هست این روایات حلویز که توش کلمه مسرات نداره فقط شات میگه تا سه روز بعد برگردون امام میفره اگر شیریم داشت شیرم برگردون نداشم که نداشتیگیم که انصافنم این حدیث مبارک هیچ اشعاری هیچ دلالتی بر مسئله شات مسرات نداره نهاییت دلالت حدیث نازر از توی این که به اصطلاح حیوان در ایام خیان برمیگرده به بایه. اگر شیری داشته شیر رو باید دهده به بایه این مراله از این حدیث مراله که اینه این, این نهایت شد و اما این که ازش استفاده بشه مسرات نه پس بنابراین این اینجا روشن شد انشاءالله ما بحث شات مسرات و اول مسرات و محطاله رو در روایات اهل بیت نداریم با اون حرابانی که در روایات اهل سنت خوندی خیل عجیبه نمیفهنون چرا خب حالا فقط در حد احتمال آیا احتمال داره که چون در روایات اهل بیت و در فقه اهل بیت مسئله بنامه خیار حیوان مطرحه؟ اهل سنت هم ندارن کلم ندارن هیچی از اهل سنت قائل به خیار حیوان نیست خیار حیوان اینکه اگر انسان حیوان خرید تا روز حق داره اصلا فکر میکنم الان بازار خود کامی مثلاً کوالا نمونه سریع شیع نه خود مردم بازار وقتی اکثر حیوان خیره بوده برگشتن قبول نمی‌زنند، قابل تا است هر وقت اینجا نمی‌خوردند سریع مردم شیع الان دعواشی ولاد صد نیکی دوی خودش داره، درست نبود؟ که حالا اول معمولاً نه من که اگه کی تا بی خیره تصور برگشتن داره، رد برای داره الان که ما که این حیوان رو ما داریم راسته. و, و تعجبش هم لطیفش هم اینه که این خیار حیوان هم ها یا فرس یا امزام ممکنه این خیار حیوان را ایمه علیه از بسه شاک مسررات گرفته یعنی خیرم برطرم نتا سه روز میتونه اگر این چیز کمتون برگردونه از نورم اید نبوده شاید اهلوید از اونجا گرفتن چون عرض کردم ما روايات زیاد داریم که اهل بیت می‌فرمان این ما هی اصول و علم نه رسوا کابر ان کابر ممکن این جزء اصول علم اهل بیت باشه چون ما اهل سنت نداریم بلکه مرحوم سید مرتضی رحیم الله در کتاب انتصار این رو جزء منخرجات امامیه آورده که هیچ کس باش مخالفه نیست چون گایگاه میگه انفراد امامیه و که میگه مثلا فلان از اهل سنت هم با موافق اما در عده زیادی از مسئله انتصاب میگه نه این میگه قطعا انفراد امامیه است قیل از امامیه کسی قائل نیست خیار حیوان رو هم مرحوم سید موضوع در اینجا بوده که هیچ سنی قائل نیست ممکنه ما قائل بشیم که دقت بخط کردیم شون طور روایات خیار حیوان لحظه مسرراته که نداره نقصه دفت بکنیم بگیم این رو اصولا این من علیه مصطبخ از همون روایت مسررات گرفته. یعنی برای پیغمبر اکتم در تصریه جهر خیار سه, سه روزه از کن روایت تصریه بعدش تو سلاسه ایام نداره و ازیاش داره را نوچاد تصویر کردن تا سر روزی باشه یعنی هدف اصلی این است که این حیوان این خاصیت رو داره حالا مخاط تصویر باشه یا غیر تصویر باشه شما حیوان رو گرفتید تا چه روز حق داریم و خيار هم و این که ادعای از اهل سنت خيار تصویر خيار ايجاد است البته این خيار تدریس است خيار تصویر خيار نیست ثلاثی نیست احتمال داره در حق احتمال میشه احتمال داد، اما انصافش اصفاتش تگیر موشه این هم یه حتی مثل امسال سیده مرتزا خب اینا در بغداد بودن درشتی میخواست هر شده نشون میدن که فرشی اشاز نیستی یه درستش بکنن مثلا که اینا خاله به حجز خبر نیستن از این که امسال سیده مرتزا این انفراد امامی است اونا خواهد نیستن ظاهرا یک خواهد خواست بعید این بیان همون نقطه شاکم و باشه حالا من یکی دو تا از این روایات به خیار حیوانم میخونم یکیش از ابلحسن رزاس با باقتن از دستاند یکون صاحب الحیوان المشتری به خیار این شالا این در بحث خیار آمان خواهد آمان آیا خیار, خیار برای هر دو طرف یا برای خود خیار حیوان خریده حیوان المشتری اینجا داره المشتری و بعد از خود همین حلبی داریم خوده هلوی گرام کندی اینجوری داره آل خیلی حیوان کله شرط و سلاست ایام در مشتری سه روز و هو به خیار این خیار یعنی ما بین پسخ و ان اینشتر از اولمیشتره شرط هم بکنه احتیاج به شرط نداره خودش در حیوان تا سه روز این حرف هست ببینید هیچ ازش تعبیر به باقی به اصطلاح مسرات در نمیاد. تو دائم هم آمده تو فقورزا هم آمده تو گربل اصناد هم به سند معتبر آمده البته اونجا به جاری است. حالا این روایت چون حالا خوندیم بین این زودیان معلوم نیست ما وارد بحث به استراخیار حیوان بشیم تو در ایزاخیار برسیم یک روایت واحده است که میگه خیار حیوان برای هر دو طرفه هم بایه هم مشتری اون رواد اینجا در این صفحه 132 به شماره 7 آمده این روایت رو خوب دقت بکنی منفرد شیخ توسیه همی که منفرد شیخ توسی بود دیگه باید محدد از که اینجایش گیر بره و تعجیمیه که از کتاب حسین سعید هم نقل کرده حسین سعید در اختار شیخ صدو و شیخ کولینی و شیخ بوده. خیلی عجیب تو مشهور اون زمان تازه حسین سعید از صفوان انا ابي عيوب كنا ما اجلاءت طرفسان محمد بن مسلم به اصطلاح خود ما در شیعه اصطلاحی علایی خیلی عجیب بود علایی اعلییی انا رياض الله قال المتبايعان بالخيار سلاظ ده ایان تل هیوان متبایعان خریدار و فروشنده در مقابل چند تا را که خوندیم برده و ازشون نخوندیم داره که صاحب الحیوان المشتری باید اینجا این حدیثی که سعیه علاییست داره که المتبایان سلاسه تاییان برخیار سلاسه تاییان حیوان، و خیماس بازاله که من بیعه و در بیعه دیگه حتی یکتره که خیار مجلیست که. نه از و مال لجستكان نفس حیوان المتوايان بالخيار سلاسل ایام فلحیوان و فيما سب ازالک بین بی ان حتی افسر تام این بحثایی که تلاش می کنید که حدیث خیلی اعصایی باشه اعراضه عصاب باشه ضعیفه قبول نمیکنه مش نمی خوب واقعا سند شیخ طوسی البته اصحاب ما میدونید این بحثا رو نمیکنن که این اعتراض شیخ طوسی است و محسوسا شیفتوسی از کتا حسین سعید و دکتار مشهور خیلی مشهور که قطعا در اختیار کلینی بوده قطعا در اختیار صدوق بوده پس صدوق و کلینی قطعا از این رواد اعراض کردن قطعا نهی که اختیار مادر هم در این است که مشتریف را از حیوان داره باید نداره فیار حیوان این همون است که الان ادهی رفتن میگن که چون اصحاب اعراض کردن قبول. ما اگر یاسون باشه گفتیم همیشه می گفتیم اعراض اصحاب این چیزی نبوده تعبدی باشه گاهی تعبدی هستنین خیلی جه شما میتونیم بفهمید راه داریم اطلاع داریم اینطور نیست که حساب باشه و اینطور نیست که مثلا یک حدیث صحیح اعلائی از محمد المسلم از امام صادق بیاد و اصحاب بی جهد اون رو باید اعراض بکنن. این من دیگه بکتم بگم به نقطه حدیث شناسی لطیفی داره این کتابی که الان دست من هست در این نسخه به صدا در همین جلد 23 جامال احادیس حقیق 127 اول احواق الخیار حدیث اول ببینید ابو علی الاشعری که احناگر نیرویس باشه کتاب کافی دیگه ان محمد بن عبدالجبار ان صفوان ان کراه نه از که شواهد ما قطعیست که وقتی مرحوم کلینی این سند رو میاره از کتاب صفوانه صفوانه بن یحیان شواهد قطعیست بسید یه ابو علی از محمد بن عبدالجبار از کتاب صفوانه پس از اینجا ارسینی به چیناتی مرحوم شیف کلینی مستقیم از کتاب صفوان در مقابل شیخ خصوصی از کتاب حسین سعید از سخمان خوشن شد خوشن کتاب حسین سعید به اختیار کلینی بوده کلینی نرمی میکنه چرا نرمی میکنه خیلی ضریف شد نکته اصلا خود کتاب اصلی پیچه شد با مراجعه به کتاب اصلی دیگه نیاز نبود کتاب حسین سعید نگاه بکنه ان سخمان این یک ای ای دو ان ال الالا الان ارز کردین شاگرد محروب محمد بن مسلمه کتاب هم داشته که در این کتاب اصول ستت ارشایی کشم اصل حلای حلایه مرزی یکی از مهم محمد بن مسلم و قابل اعتنان ان محمد بن مسلم هست تا اینجا روشن شد که در کتاب حسین سعید صفوان ان عیوب ان محمد بن مسلم در کتاب کلیمی صفوان از علا از محمد موسیقی خیلی واضحه دیگه که مظموم صفوان از کتاب علا موسیقی علا این نرم من ان عبی عبدالله قال قال رسول الله البیان بلخیار البیان بلخیار حتی افترقا و صاحبول حیوان بلخیار تبسته ایاما <تصحن> و صاحب پس نسخه ای که در اختیعاسم سعی این بود اینطور بود از مت آن به خیاز خلاسات اییافت حیوا و فیما سوواداله که من ه تا هفتزار ها طلب باش شد معرووط نه که همیشه ارز هم که کا میثم ببینیم که آرومشون ما همیشه عرضز می کنیم که ه درصد تا آرو بود اول از سر روششن شد اراض اسب ها نبود معلوم شد دو نسخه از این روایت موجوده و متاسفانه هرگاه هم در کتاب سفوانه یکی از توسط شاگرد معروب محمد المسلم یکی هم فساده تو نسخه محمد المسلم توی نسخه علاقه رسول الله در تو اون نسخه نداره یکی توسط ابای ایوبه طبعا معروب ما الان اختلاف رو به امام نمیتونیم نسبت میدیم اختلاف رو به اختلاف نسخه نسبت میدیم اصلا نمی محمد موسیه چی گفته کدای که درافت کرده؟ و از ا جایه به کارینتی که کلین نظرله باز ش توسی نقل ن کردهه چه کم میشه حالاً متون کلین نرم میکنه. اون ممثلا پیششه که رو ارده باز م کلین نقل نکرده. بیه روایات محدل اتفاق یا ریمان رو برای مشتری قرار دادهه هم یک روایت غ از این یک روای به اتفاق برای مشتری قرار بودن پس بنابراین در حقیقت اطحاب ما این نصف رو که یک خطایی در نقل پیدا شده نمی خواهی میگید چون دنبال بوسیق و شواهد بودن الان کتاب صفوان در اختیار کنینی بوده همه یک بحث کمرویتری داره که آزم بارده بحثشون بختم گذشته ما یه که ما از مرحوم شیخ میشه که توصی عبدالله و شریف تریق خودشی که وسی نامه است رو اگه درستیه، اما احتمال می‌دونیم مربوط میشه که توصی این طریق رو من بابت همون آورده نه از کتاب‌های حسین نامه که شاید بعضی از نوستره شدن هم وجد می‌دونه ولی شاید اینی نداره. این شنید کلی داره که این کلاینی ولی خوندم از سپت شوالیشونی چون کسی هم توالون تنها دست نشده، خیلی تونیش هرگونه گونه تهدید سازی باشه کنار پس منابر این روشن شد که یک حدیث داریم که المتبایان بلخیار سلاس ایان حیوان این نسخه متاسفانه روشن میز مرموم کدینی از کتاب صفوان مستقی مرموم کنه در نقلی که داره اینجوره البیان بلخیار سلاس ایان حتی اثره با وساج بلحیوان بلخیار سلاس که مشتری باشه مطلق نیست پس تا اینجا روشن شد از نظر حدیثی ما به حدیث مصررات و نصور این که خیاردرش باشه فعلا در های حدیثی ما شک روشن داریم روشن نیست امتاقن واضح نیست بریم فردا انشاءاله این نظر میراث علمی رو متعرض بشم و مساله مسئله رو جمع بکنیم مسئله الله عنه محمد و آلقه طافل را صبحی که توی کافه یا نه اس کافیه کافه اس اینو. یهو میشه سر نمی‌خوره. یه قهوه ای داشت نمی‌خوره. فردا بحث کنیم بوده چطور نسخه بود. اختلاف دارید چرا؟ به از حتی کاری نهر نیست میگه محمد نیعبو برای نداریم خود همین تقریبه که خواهش نظمه بکنی اسم پس در مشکه افدال کتابی که اصلاحی کافی چند حریر هم داره همه نصاحی بغدادی هست از قوم محمد نیعبو نیست اصلاحی در بغداد چطورت محمد نیعبو شد مشکه تحصی چرا بعضش مثلا میگه اگر از این باشه از اون کتاب گرفتن مثلا اصلا احمد محمد از کتاب محمد علی محبوب کرد میگه باید چه طریق به این معنا بدیم که از خود کتاب نهاشه این خیلی بلکیف بودی خدیف همه یک حدیث یه علایی رو بجرد که این چه کار شد که یه حدیث یه علایی رو و, و معارض با تمام روایان من این شد تاروزی نداره نسخه خرابی داره به علم خرابی داره نسخه حسین سعیدیم زمان کسی عبارت کلونی رو نقل کرده احزار عربان رو بودیم بفرستیم die das